آشنایی با حبایی بسئلو اهلت ذکری انکنتم لا بعض اکتاب ها بعد از اصرو سوال قدیم یک بعد از جوانا سوال هم کرد آشنایی با حقایق پاسخگوی سوالات شرعی شما ببینیم که جمهور علما به این بابر هستند که نکاه شغار پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید. این چیزی در نسوس شرعی نیامده در آیات و حادیث نیامده که شما دوم دو اینه که در ای که در اون تصویر وجود داشته باشه نماز خوندن در اونجا کراهیت داره بلی اجلب بل الخیره ممانیت اینی اگر کسی قبل از اینکه آشنایی با حقایق را شنبه الى پنش شنبه از ساعت یکونیم الى دوانیم بعد ظهر به صورت زنده و مستقیم فراموش نکنیم بسم الله الرحمن الرحیم خدا نامش سراغاز کلام است که لطفش سلامت در سلام از خدایی که هل لعظه با ماست به ذکرش هر مرض قطعا مداواست یقین دارم که هر دردی بیاید خودش از فضل خود درمان نماید اللهم صلی علی سيدنا و نبینا و شفینا و مولانا و محمد و علی آله و بارک و سلم علیه محضر شنونده های خوب و فهیم رادیو قزلی ندای امت صدای فضیلت ها السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته امید هر کجایی که از از و کامل برخوردار باشیم خداوند منان را بی متشکر و سپاس که باز هم ما را توفیق بخشید تا بار دیگر و روز دیگر از طریق برنامه آشنایی با حقیقی برنامه پاسخ به سوالات شرعی به خدمت شما علاقومندان و دوستارانی برنامه یشنیهی با حقایق حاضر شیم. امیده تا آخرین لحظات برنامه ما رو همراهی کنیم و میتونیم به برنامه تماس بگیریم، سوال شریع داریم پرسان کنیم و از برنامه پاسخ سوال خور بشنیم. دو خطه تماس برنامه 0792-792-792 و 0786-7926. اولین شنوانده روحس میکنیم. شنوانده مطرم. سلام علیکم. علیکم السلام بفرمی اکسوالشو. بفرمی مطرح کنیم میشنیم استغفر الله اگه صد دفع شمایی که زیاد داره استغفر الله باید متشکر دکه سوال دکه خیر بیمتشکر زنده باشیم خداوند من حافظ و نگه داره شما شنونده بعدی سلام علیکم شنونده مترم سلام علیکم تو سلام خدمت وقت شما بخیر تشکر وقت شما بخیر خانم محترم بفرمی تمام داشتم که من که خانه اتریات نادر داره بله دیگه سوال اوسر زا ک خانم ی شوهر وخت ې زوج م برو ځه راځي نه بده بهو خدمت نکنه ولې شر م ویملول هکړې نو بد دسڅهخه بهکړي نو ب مزپرځن یم د خوهر خیل یهم ناراحت دی که غن ن دنیات خهتره بشمږ زره نه خداینه دنیات چک خر کر تای بس ن خوهر نکم نه شه یا خیر بلې دږه سوال تشکر تمسدا امشما مشکل دن خدایا مشکلهیانې مسلمان حل سلام علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته شنونده بعدی سلام علیکم سلام و روز بخیر به شما برادر عزیز و شکر ماترم زنده باشیم تشکر برادر بفرمین دوانه بشه از جناب مفتی سوی بفرمین ماترکمون اگر افتاد و اشکاد ایلو یک لگ بیه کلا داره زکات برای واجبه بله دیگه سوال. شما خداوند شما باشه. خدا من حافظ و نگهدار شما شنونده باشیم جناب استاد با تشکر شنونده بعدی سلام علیکم. سلام می زنده باشیم تشکر بفرمایید. تا <تصفيق> واردی سوال دعا با آخر ملک بله دیگه ترینیفی سوال. سوالی ما چال چندی است می‌دانم که تیم ما اول ما متواجدی از آدمی دیدیم که کوخاکی زنی خورده بودیم. دوست داشتیم به زمین اینا هر روز وقتم با که چند سال پیش آمده بودند. یه سری دیدار آمین تیگوون آمده بودم. آقای ناموکد آمد. دوست داشتیم چی نگفتم. که که مصالحن لوغدان شما نه مکوخا بده داخل چای درسته بله می خورات چی چی که غذا گاز نمی گیره نه خاطر نه بده گفتیم دیگه سلام تشرک را شما زنده نام خوش آسکنومالی کنم تو می تونیش؟ ﷲ علیکم ﷲ سلام علیکم ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ سوال ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ آیا قرآن بعدی سلام علیکم برادر سلام علیکم علیکم السلام بفرمین وقت خودم اینجا داره نداره می رویش کنه کم نکنه و خود می گیره این پر برادم اینجا داره درست دیگه سوال خدا حافظ و نگه شما شنونده بعدی سلام علیکم برادرم مترم اسم برادر و گذاره تماثیبی سوال بشنم بلی خوش آمدین برادر بفرم همی مثا <سؤال> امی نماز جمعه که دمم یک رکت میرسه مث که میره مسه که م مله مهخونه با چ کار کنه ده سلام ده نه ده چکار کنه امی بما تزب دی نماز جمعه درسته بله بله دکه سوال عبیدو سوال امی وهد سیده س کنه معلم دی امیناسهسبهخوب ی نهی چه رم برادرمره بلې دگه سوال قربانه شما یم س تر تشکره شما زنده باشیم شنوانده بعدی سلام علیکم علیکم و رحمت الله و, و برکاته علیکم و سلام بفرمی آخری سلام صدر شما درست نداریم برادر حالا خوب داریم که به من آه بیتر شد بفرمیم نترکنه همی گفتم انجیزایی حضبیه به حضب نوم تحریر بلی نرزون رو بهت بکنه خوب آدم بشین خود نرشینه بلی دیگه سوال سوال اینه که نگاه اگه یاد به خیلی ایلوه یا استفرالله بگه هنین ساعت همین خداوند خداوان جده در اقیق بده میکنه در اقیقه این داره دیگه سوال یاد که این تایدکت تایدون می کنه تایدون خالصانی تایدون می کنه که خدا دل بحر نمی گردونه با فاقید خدا که اما یادتونه من بله، دیگه سوال؟ یادم دادن میگم هزار سال چی گفتیم؟ 3000 سال سال. صدا شما درست دوزخه هزار گفتیم. آ 12 سال بله، دیگه سوال نداریم زنده باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما زنده باشیم. شنونده بعدی سلام علیکم. سلام خود. سلامت. علیکم السلام زنده باشیم بفرمایید. خانم را خوش خواهر بفرمایید. من از اون لایک و این دوار بله دیگه سوال. سوال خیلی خدافظ. تشکر شما زنده باشیم شنونده باشیم جناب و ساز پاسخ میدن شنونده های شما میتونیم به دو خط تماس برنامه 0792 0792 0786 078926 به تماسیم شنونده که دسترسی به پیام دارین میتونیم دو خط پیامک برنامه پیام آخر ساکیون در لابلای برنامه و سوال شما از طریق پیام هم پاسخ داده میشه سفر ۶۰۰ هفت تود هفت فیصدو و سفر ۶۰۰ سی سهصد پنجاه خط هایی پیامکی برنامه بود. شش نماده سلام عليكم. واره کترام برادر خود سلامتی. زنده باشیم تشکر به سوار سواری دیدم که اسماعیل اودلواریشو مختلف اسماعیل برای یا خود یا چی رقمانایی. عبدالواری است دکه. مختلف. مختلف دکه. یا که امې خځې یا پای باشه یا مثلا شل باشه امې نماز دي جنازه امې ته شسته بهخو مشکل نه داره سوال یاکه سوال امېنه کړې یک ځای د هه ختمې غرآن اول هغه ختمې غرآن اول اذالم طریقې په کړي دلته دګه ختم کهد ختم شو دوی امې رغم ونهشي رغم ته سوال تشکر از شما زنده باشیم میشه نمانت باشیم جناب ساس با سختم دنچن بعدی سلام علیکم. سلام زنده باشیم تشکر بفرمی. سلام علیکم به این دیار است. آنها مدرن لونگ بزنیم آنها مدرن زن ناره مدرن کره لونگ بزنیم آنها نیروی آب می‌زنیم انسال دیار است بیشینی از که آمد به سر زیارت یا گفت یا خود اختلاط رو تیگی بکنید نه هم مورد نیفهم اتو کی اما بگو آمینید سبب نخیرگید سبب نه خدا حافظ تشکر که سوال زنده خدا حافظ خدا حافظ و نگه داره شما شنوانده بعدی سلام علیکم شنوانده محترم سلام علیکم علیکم زنده باشیم خواهر متر اما بفرمی سوالی باشیم مدت 5 سال میشه ازرواز کردم بردوال یک دارم که حالا میشه یا نه که جلوگیری کنی؟ بله بله دیگه سوال بسیم آخواست تشکر زنده باشی شنوانده باشیم جناب و ساس پاسخ میدن. شنوانده های خوب رادیو قذلی ندای اومد شما شنوانده برنامه آشنایی با حقای قسم برنامه پاسخ به سوالات شرعی که امروزه به صورت زنده مستقیم روی موجی 99.9 FM 99 پخش میشه شما میتونیم به برنامه تماس بگیریم یا پیام داریم ارسال کنیم در لاباله برنامه سوالات شما پاسخ داده میشه جناب استاز ملوسی عبدالواهد فائق استاز دارالولومی امام محمد قضالی با ما در برنامه هستند جناب استاز خوش آمده بسم الله الرحمن الرحیم اللهم سلی على سیدنا محمد و آله و بارک و سلم علیه اللهم بارک على محمد و على آل محمد که مبارکت على ابراهیم و على آل ابراهیم اینکا حمید و مجد حمد سلام ار آن ذاتی را که ما را توفیق داد تا لحظاتی در خدمت شنوانده های عزیز و حضور شما دوستان و خوب و این برنامه زیبا باشم. تشکر تشکر شما جناب استاز شما را حایتماس برنامه 0792-792-792 و 0786-70-90-26 میباشه جناب استاز در ابتدا شنوانده ما سوال کردن گفتن که اگر صد بار استغفر الله در صبح و صد بارم در شب ما بگیم چه ثوابی داره استغفار فضایل متعددی داره از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلام می فرمایند تو با لمن کان فی صحیفته استغفارا کثیرا او که قال نبی صلی الله علیه و سلم مبارک باد خوشی باد برای کسی که در صحیفه اعمال اون استغفار زیاد باشد از حیث مجموع استغفار سبب برای بخشش گناه ها قرار میگیره استغفار زیاد سبب بری وسعت رزق قرار میگیره سبب برای راهتی روح روان انسان قرار میگیره خصوصا در وقت صبح و شام که در آیات متعددی هم الله تبارک و تعالی فرموده که در این دو وقت شما به ذکر و یاد خداوند جل جلاله مشغول باشید. از حیث مجموع همچو فضائلی را دارا هسته و خصوصا در وقتی صبح و شام فوق العاده ای داره. خیلی هم خوبه که انسان بتوانه در همچو اذکاری کاملا شب و روزا مشغول باشه خصوصا در وقتی صبح و شم. تشکر شما جناب استاد شنونده سوال کردن گفتن که اگر ما دعای استخاره یاد ندشت ما نماز استخاره بخونیم به جای دعای استخاره باید چی دعای بخونیم مشکلی ندارد حالا لازم نیست که باید حتما ما همو کلمات عربی را تلفظ بکنیم ما با دورک دو که خونده میشه بعد انسان فرسی دعا میکنه کلمات فرسی را تلفظ میکنه پروردگار را اگر همین کارو برنامه ای که من پیشرو دارم امید تصمیمی که من دارم اگر خیر است من را توفیق بدی اگر در خیری من در دنیا و در دین من به خیر نیست من را از این کار و از این برنامه من کن. و منصرف بگردون همین فرسی دعا کنه اصلا نیازی نیست که دعای عربی را حتما حفظ کنه و با هم کلمات عربی تلفظ بشه همین قدر کنسان انسان که دعا کنه که خداوند من را در همچکاری اگر خیری من در دین و دنیا و آخرت و حاضره من هست من را توفیق بدی و اگر نیست من را منع بکون این همین کلمات فارسی که تلفظ کنه کافی هسته تشکر از شما جناب اساس جناب سوال کردن گفتن که یک زنی هسته که بسیار به شوهر خو ااطرام میگذاره و بسیار خدمت شوهر شووهرخوا میکنه اما شوهری نوع سپاسه حدچی خدمت میکنه میگه اگر تو به کف دستم کوی طلا یا کنا هایی که میگن یعنی هرچی خدمتی به ما بکنی باز مست و روزینی می شما حالا این زن آیا ماخذه هسته در نزد خدا یا نه حالا چی تقصیری داره ببینیم حالا چی تقصیری داره زن که حی خستگی برای مرد رخ داده چی؟ کاری را انجام داده که همیقدر دلشکستگی برای شوهر آمده اگر در واقع حقیقتا مشکلی از طرف خانم نباشه و کدام تقصیری نداشته باشه همان دستوراتی که از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم و اسلام رابطه به حقوق بین شوهر را همسر بیان کرده شده انجام بده در آن وقت کاملا تقصیر از شوهر و بر این خانم و همسر اصلا کدام گناه و معصیتی نیست ولی اگر به اساس کدام تقصیری به اساس کدام خیانت خدا نخواسته همچنان دلشکستگی یا دل رنجی به هر رخ داده باشه بعد باز هم باید ویزیفه ای ایمانی خوده خدمت خوده انجام بده تا حد توان کوشش کنه که همون دل زور به دست بیاوره اما خیلی کسایی هست که دورشان اموده های عزیزی ما که بدون یعنی که کدام تقصیری همسری او انجام داده باشه و خانم یا کدام کاری خلافی خدا نخواسته انجام داده باشه طبیعتا او رو به و همراوز و همه نداره اون در آن وقت تقصیر از آن خانم و از آن همسر نیست تشکر از شما جناب و جناب و ساش, جناب و ساش سوال کردن گفتن اگر کسی هشتاد یا, یا یک لک پول داره. آیا زینام زکاتی میشه یا نه؟ بله قطعا وقتی شرائط زکات وجود گیره یعنی یک سال بالا این زینام بچرخه و مقدار همینقدر که داشته باشه حتی مقداری 20 هزار افغانی که داشته باشه و سر او زکات لازم میشه فرض میشه که بعد حتما زکات آنها را بدهد تشکر از شما جناب استاد جنابس شنونده بعدی سوال کردن گفتن که میگن اگر از دست آدم غذا که باید دورور داریم بخوریم اگر از دهان افتاد او حلال نه او نباید بخوریم این گفته درسته؟ نه خیر یعنی حلال نبودن نیست حالا سنت است که چون در غذا غذا به خاطر برکت استفاده میشه خورده میشه برکتی در یک جزی از اجزای غذا وجود داره که حالا کسی هم دقیقا نمی که آیا در همون پورهی که به روی دستارخان افتاده برکتی که در وجود انسان واقعا تقویه وجود و تقویه همو ذهنیت و تقویه روح و روانی انسان میشوه همان همون ای که در روی دستارخان افتاده است همان است یا نه آن که در داخل کاسه مانده یا نه آن که استفاده کرده از او جهت که از همان برکت استفاده شه و در از جهت دیگم پیروی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بشه کدام لقمه که میافته که آن را خوردن خارخاشاک را دور کردن و خوردن او بهتر است فرق نمیکنه چی از دهان بفته چی از دست بفته اصلا کدام کرهیت و کدام حرمتی به او وجود ندارد. تشکر از شما جناب استاد جناب استاد شنونده گفتن هم دعایی که بعد از سوره ملک خونده میشه چی دعایه دعای مخصوصی داره الله ربنا و رب بما سوری ملک خلاص میشه مستحب است که همین دعا را انسان بخواند الله ربنا و رب العالمین یعتینا بی ما ایم معین تشکر شما جناب 149 گفتن من روز چای دم میکردم و داخل چاها متوجهم هم که کخک خورده به نام خوره یا خوری کوخ... خوردی می داخل نام بفتاده بود بعد از اون چهار ببردم همه اعضای خانواده بخوردن و خود من بخوردم آیا اینا حرام شده بده یا نه؟ نه خیل. حال حرام نیست ولی حالا ببینیم نظافت و از نظری تیب با توابت بعضی خیلی میکروبه های زعیف است که سبب مریضی می شود سبب یک مشکلی در همون خانواده خدا ناخواسته می شه. پس بتره که حالا او در حرمت نهایتا کراهیت داره بالاتر نیست ولی ای خطرهای جانبی و خطرهای گویا طبی، ایجاد میکنه در بعضی از غذاها در بعضی از میکروب ها در بعضی از کخها که ولو که خورد هم باشه خدا نخواسته یک نوع بر او وجود داره که اگر همون چای را یا همون نان را کسی میخوره یا مینوشه کدوم مریزی در وجود ایجاد میشه که این جگاه گویایی ای مقصیر است و گناکار میشود پس بهتر است که کوشش شوه که اولا خب باید نظافت مرآ شوه در همه سرای س کخهای وارد نشه داخل نان یا داخل آب اگر میشه باید هم خانواده را خبر بکنه آنها را به دشت بیاندازه و از جدید آب جوش بده مثلا یا غذا به پزه را جور کنه تشکر جناب و ساشنونده سوال کردن گفتن اگر کسی عادت ماوار باشه کلمه کلمه قرآن شریفه بخونه های مشکل داره؟ اگر آیت تکمیلی نباشد اگر آیت را کاملا یک آیت را پره نخواند جواز دادن فقها ها تجویز کردند که به اساسی ضرورت آیت را تکمیل نخواند کلمه به کلمه برای انسان ها و البته خانم های مریض فقها ها به اساسی ضرورت تجویز کردند بله جواز دادن جواز دارد شنوانده بعدی گفتن اگر ما می میگیریم بعد از سرخ سرخو کم می میکنیم یا نخونه خو میگیریم آیا دواره وزو گیریم یا؟ نه خیر مشکلی ندارد نخون گرفته شود یا سر کم شود اصلا به وزو کدام نقص و کدم ضرری ایجاد نمیکند شنونده بعدی سوال کردن گفتن اگر ما به نماز جمعه یک رو می میرسیم چیکار بکنیم باید نماز جمعه نیت بشه و رکعت دیگر را همچنان دو رکعت نیت کنند که رکعت دیگر را خودشون بالاشو انو بخونن حتی تا قاعده اخیر و یا اتهیات اگر انسان هم میرسه باید او نیت جمعه را بکنه اقتدا به امام میکنه جمعه را بکنه بعد امام که سلام داد به هر دو رکعت هم که نریسته باشه ولی به اتهیات رسیده باشه یا اون که به یک رکعت اون نماز ای خود را ادا کند و همون دو است شنوندگان گفتن که نام وحیده و, و سیده، اوه نام، نامی نیست، نامی پسندیده و نمایی نیست. شنوندگان بعدی گفتن میگن اگر کسی لایل الله یا استغفر الله میگه همون در جنت بزه درختی در بله حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلام است که میفرمایند حضرت ابراهیم علا نبی و علیه صلات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمیدن جنت زمینی صاف و پاک است برای امت خود بگو که هر کس می خواهد در آنجا باغ و باغشی داشته باشد باید سبحان الله و الحمدلله استغفرالله الله همچه کلمات و اسخاری را ذکر بکند که هر کدام از اینها یک نحال و یک درختی در آنجا می شود درست است ولی تشکر از شما زنده باشیم جناب الساز. شناوند آموزترم شما را های برنامه بر نمود 792 70 نواده دو 70 نواده دو و می باشه شناوند بعدی سلام علیکم علیکم السلام. سلام داشتیم و تو قلامی از بعضی میگن که نخونه بشنو نگیریم چه اومده دارم میشه از جناب استاد بگه. بله دیگه سوال. از شما خدان. تشکر زنده باشی. شنوانده بعدی سلام و علیکم و زنده باشیم تشکر بفرمی جنب یک سوال که خوردن زنها در خانه نماز سر لق بخونن خوردن مشکل قضا خوردن بله دیگه سوال شکر خیر میرید تشکر زنده باشیم شنونده باشیم جناب اصداد با پاسخ میدن شنونده بعدی سلام علیکم سلام و علیکم ساعت خوب بخیر استیم زنده باشیم تشکر بفرمیم چند سوالتا از جناب استاد مسلم سوال از نال میگه که گای اختبار با معتید میرین نماز خود ایمان میخونی باید مختیری هستن فعلی فرمانی که با صدای بلا ه پیش آدم لیست باهم میشه وقتی که آدم میشینی آدم لیست میشه وقتی که نماز صنعت همیشه خونه بلند نیکنه نمیتونی خدا ها حتیش آدم لیست بشه. حالا باید ما انجام سوال دومه انجام بدی سوال دومی که است من دارم که به چیز جماعت تبلیغ. خانم من مامانی ادم کردم که تنارو با خانه کاسیونیه. من خیلی علاقه من استون که بروم. سوال دوم سوال سومی که اگر من بدونی جوره خانم خدایی کنم خانه به ولی مشکل باشه دیسوار تشکر تشکر شما شنوانده بعدی سلام و علیکم شنوانده سلام علیکم بله سلام و علیکم بلندتر صبحت کنیم بفرمی بفرمی دارم جوش باشه وقتی که با به پیش دیگه اجای وکیل بله دیگه سوال تشکر باشیم وردی بعدی سلام باشیم جناب بعد السلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام بفرمایید چه می اتکاف رو در میون بیتکوف میشینم بله بیشتر ها نشینم چی میشه بگیرم بیشتر ولی به غیر از رمضان درسته یا در بله دیگه سوال. اگه چه چه داره که سر از مشینه، زمان موقاتی مشینه، هم با روزه نباشه. روزه نگيري میشه یا بعد حتما روزه داشته باشی یعنی اگه بیشتر ولی زدنیم نه تشکر جناب استاد، حتما تشریحات دارن. دیگه سوال؟ زنده باش. شما بعدی سلام السلام زنده باشیم برادر بفرمایید. کاز مثال خیر نداره <تصفح> بله دیگه سوال سوال دیگه نگاه کاس داره در بله دیگه سوال چه کو می خوش خدا من حافظ و نگهدار شما شننده بعدی سلام علیکم باشه، من متصل بعد از برنامه تماس بگیریم جناب و پاسخ میدن جناب و سوال کردن گفتن اگر کسی گناه میکنه گناه کرده حال توبه کرده میگن وقتی که توبه کنه گناه به حسنات تبدیل میشه آیا اگر دوباره توبه خوشکست او گناه قبلی چیکار میشه نه، پس گناه حساب میشه نه حسنات هست الله تبارک و تعالی کریم است، مهربان است حتی حدیث می آید که پیانبر صلی الله علیه و سلم می فرماین در باوی استغفار و توبه اگر انسان به قدر پوری کره زمین از گناه و معصیت بیاید ولی صادقانه ورگرده و توبه کنه و رجوع به سوی خداوند جل و جلاله بکند هم گناه های اون حرف می شود الله تبارک به تعالی می و همان قدر به قدر اندازه گناه ها برای آن ثواب هم می دهد اگر بار دوم سوم توی او اولا کو باید هم انسان تصمیم بگیرد که از کدام معصیت و گناهی ور میگردد یک از شرایط توبه هم همیست که باید قصد و تسمیم قطعی داشته باشد که بار دوم این اشتباه و گناه و خلاف مسیری رضای خدا و پیغمبر صلی الله علیه و وسلم نمی‌روَد اگر برود این گناه جدیدی دارد این گناه مستقل است گناههای قبلی را الله تبارک و تعالی بخشیده آنها را عفو کرده الله تبارک و تعالی اگر از صادقانه همان وقت برگشته باشد اگر در زبان گفته باشد خداوند خواسته آنجا که معامله همراه خدا هست خداوند کو عالم در قلوب است میداند اگر خدا نخواست قسم معاملی که در بین مردم و زبانی بوده باشد که اصلا او گناه مخفور و بخشیده نشده است با... نشده اگر در صورتی که قلبی تسمیمی و قطعی بوده که ورگشته و توبه کرده الله تبارک تورک و تاله گناهش کلا بخشیده است تشکر جنو و از طریق پیام سوال کردن گفتن اگر نماز و صبح قضاشه چی حکمی داره؟ فرق نمی کند. فرض است گناهکار است انسان باید هم به گردن او لازم است ضرور است که در هر وقتی که وقت پیدا میکنه و به یاد اون میآید نماز صبح خود را بیارد یک فرضی را ترک کرده که کاملا مقصره اگر در صورت قصدی باشد گناهی خیلی بزرگی دارد اگر به خواب رفته باشد یا بر اساس کلام ضرورت و مشکلی نتوانسته باشد بازم همان فرز الهی ترک کرده در گردن آن لازم و ضروری که باید هم اون را قضا بیاره اگر قضا نیاره مورد بس در روز قیامت قرار میگیرد جنب و سوال کردن گفتن که بعد از نماز عصر آیا قضایی خونده میشه یا نه؟ قضایی خونده میشه به همراه کراهیت قضایی خونده میشه ولی ها قضایی نماز خونده قض... نماز قضایی و سجده تلاوت که فوری خونده شه جواز دارد بله شنونده سوال کردن گفتن که ما اگر نام دختر تنسیم بگذاریم اه اه یک کلمه محمل است بهتر این, این است که از اسمهایی که در صدر اسلام وجود داشته اسمهای بسیار خوب و زیبایه همچون اسم واضح رو که از روی فلم و از روی سریال گرفته نشده باشد اسم واضح تر رو اسم از زواج متحرات و از همسرها و خانمهای حضراتی صحابه کرم رضی الله تعالی عنهم گذاشته شود بهتر است شنونده گفتن کاسه بعد از که قضا تمام میشه اگر به انگشت پاک آیا سبب داره ای سبب دارد و بهتر است قبلا نگفتم به او هم به خاطری همان دریافتن همان برکت که شایدم هم همو برکت که در یک غذا هست که او سبب تقویه وجود انسان می شود شایدم هم در همو که در داخل کاسه مانده است از آن جهت بهتر است که پاک شود شنونده بعد از طریق تماس سوال کردند جناب ساز گفتند که دعایی که هفتاد هزار ملائک به قدرم دعا میکنه و چی دعای؟ دعاهای متعدد میآید از جمله حدیث در است که پیامبر صلی الله عليه و سلم میفرمایند اگر کسی صبح و شام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم این قسم اعوذ بالله بگوید بعد سه پیره سه آیه از آخری سوره حشر هوالله الله لا اله الا هو عالم الغیب و هو الرحمن الرحیم اینها را بخواند همچه فضیلت شاملی حالی انسان می شود اگر در صورتی که همان روز از سر صبح اگر بخواند همان روز بمیرد از جمله افرادی که در بهشت داخل می شود به حساب می رود اگر از طرف شب بخوند همچنان همی فضیلت را می باشد بله جناب ساش سوال کردن گفتن که نام عبدالوارس و مخلص آی نمای خوبی یا نه؟ بله نمای پسنده دیده گرشی عبدالوارس، سیست، بسیست آه، تشکر، گفتن اگر کس پای قط باشه آی نماز جنازه نشسته بخونه سهی میشه یا نه؟ بله نماز جنازه باشه نماز فرض باشه وقتی که انسان استاده نتونه به اساس ضرورت و به اساس مشکلی همان فرض قیام از آن ساقد میشود و جواز داره هیچ مشکلی نیست تشکر از شما جناب اصاز جناب اصاز شنونده بعدی سوال کردن گفتن که میگن وقت زنها به زیارت میره باید لنگ بزنن اگر در غیر صورت مردها اونار لسک میبینن یا ملق میبینن گفته ش... ای گفتش این کاملا اشتباه هست خطا هست اصلا یک سخنی بیهوده هست. این در زیارت رفتن به همو وفقی که پیانبر صلی الله عليه وسلم راهنمایی نمائی کردن جواز داره اما این سخن کاملا بی اساس است تشکر جناب و سوال کردن گفتن که ما وقت سر زیارت میریم خودمردا گپ میزنیم یا سلام میکنیم آیا اونو میفهمم یا نه مسئله سماي موتا یک مسئله اختلوفی هست مسئله اختلوفیه اختلوفی سماي موتا یک اده از حتی صحابه کرام قائل به سما بودن و یک ادام قائل به عدم سما که موتا وجود نهاره به هر صورت عده کسیر از فقها ها سما را قائل شدند و بیشتر در روزی شب و روزی جمعه مرده بیشتر حس داره بیشتر احساس میکنه زائر خود را حتی حدیث هم می آید که اگر انسانی تیر می شود همان مرده و همان انسان که در داخل قبر است کاملا همین انسانی که به زیارت آن می رود یا از از همون زیارت می گذارد با اسم و با همو اسم خود و ولد و کاملا او را شناسایی می کند و حس می کند آن را حس می کند و کدام سواب و دعای اگر در حق آن بکند می رسد سوابش تشکر جناب استاد ساش سوال کردن گفتن اگر کسی نخونه ها خوب شب بگیره میگن که اه او گناکار میشه های گفته درسته نه خیر مشکلی ندارد در شب باشه یا در روز باشه گرفتن این نخون سنت است اشکالی ندارد که در شب بگیرد یا در روزگیره شنمنده ای جلوتر سوال نو بقیمون گفتن که ختم قرآن ما برفتیم جای قرآن ختم میکردن از سر لممتکیف ت چیزی هم نخوادم ترکیف شروع کردن رو به ختم یا, یا ختم قرآنه؟ مشکلی ندارد حالا طلاح ها هست یک اصطلاح هست وگرنه، ختم قرآن ایزی لازم نیست که حتما باید جز اول خوانده شود یا جزء وسیطی یا جزء آخر خوانده شود همون چند آیایی که یک انسان میخوند و به روحانیت یک میت و یک مرده میبخشد اگر الله و تعالی, و تعالی قبول بکند سوابی آن میرسد فرق نمی کند. یک سوره بخواند، بالاتر بخواند، پایین‌تر بخواند، از وسط قرآن عزیزموشن بخواند، از اولش بخواند، از هر جای قرآن عزیزموشن که خوانده شود مشکلی ندارد، او یک اصطلاح است که باید از اول شروع شده جزء اول را به تکمیل بخواند و بعد از وداهای شریفی و از علم ترکیفی شریف آنم باید بخواند، یک اصطلاح است، وگرنه فرقی نمی‌کند، همو چند آیه‌ای که از قرآن عزیزموشن، از هر جای قرآن عزیزموشن که خوانده شود، اگر الله تبارک و تعالی بپذیرد، به خاطر خدا باشد، آن را قبول کند، ثواب آن به همان میت و انسان می‌رسد. جنویس ها سوال کردن گفتن که میگن سی, سی سال یا سه هزار سال همیت در دوزخت سه هزار سال بله حدیث شریف است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند مثلا یک هزار سال آتش جهنم برافروخته شد تا اون که سیفی شد بعد یک هزار سال تا اون که سرخ شد و بعد یک هزار سال دیگر هم تا سیاه شد و الان سودان مظلمه او کما قال نبیه صلی الله علیه وسلم که فعلا رنگ آتش دوزخت سیاه و توریک است شنونده گفتن ما 5 سال میشه که زواج کردیم یک اولاد داریم حال شو هر مدوساره که دیگه ما اولاد داشته باشیم اما ما دوست ندارم میخوام جلوگیری کنم و گناهکار بشم یانه یعنی. اگر کلام مشکلی نباشد بله اگر کلام مشکلی نباشد مشکلی جسمی و وجودی هم نداشته باشد الحمدلله و در این حال طفلی دیگری هم که به صلاح شیر بشیرش شود و اون به طفلی کی وجود دارد ضربه برسد تا اول شیرخوریه او پره نشده باشد اگر همچون موانی و مشکلاتی نباشد بدونی کلام ضرورتی جلوگیری کند اصلا هیچ مشکلی وجودی به طفل یا به خود خانم نباشد گناهکار می شود کانالن تشکر شما جناب و ساز سوال کردن گفتن که اگر ما به جای میریم که قضاینا ناپاکه و قضاینا یا ناپاکه یا غذای درست اینیه ما نمی خیریم آیا ای کبر گفتن می کبر ببینیم که بهتر و غمت و ناس پیامبر صلی الله علیه و سلام میفرمایند کبر رد کردن حق و کم مخلوق است مردم است که مخلوق الله تبارک و تعالی تو, تو کم ببینی خود ببینی تحقیر کنی ای کبر است ولی خیلی از غذاهایی که درست پخته نشده مثلا یا کاملا نظافت مراد نشده میلی انسانیه حالا او دلالت به این نکنه که متکبیر باشد خمیل نداره طبیعتو نمیگیره به هر چه غذایی که از نظر عضو حالا در واقع لمشد باشه یا نباشه حالا ذهنیت یه میتون شد برداشت همی... میتون شد که غذا لمشته یا دقیقاً غذا کاملا درست پختن نشده قرار باشه بخوره این مریض میشه که مگرم با چقدر قدر به دکتر رو به کلینیک مصرف کنه او کلم کبری نیست کبر است که تغییر میکنه انسان ها را تحقیر میکنه حق را رد میکنه اگر از کسی پویند دستر خود حق را شنید او به هر قسمی باشه یک توجیه و تعویلی میکنه و اون را از گردن خود رد میدهد ای کبر است او که در جای طبیعت انسان میگیره نمیخوره یا میگیره میخوره او دلالت بر یعنی همو دلالت بر کبر و غرور یک انسان نمی کند تشکر از شما جناب 890 سوال کردن گفتن که ما به مسجد میریم که نماز جماعت بخونیم بعضی از مختدییا که کنال نماز با صدای بلند میخونن اعتیات و دیگه تسبیحات و تکبیرای انتقالی ما اشتباه میکنیم نماز شما توصیه شمون بر اینا چه آیا داره امیت بلند و جز دیگری هم گفتن که سجده سهو لازم میشی یا نه بله اگر در هم اشتباهی کرده باشن که کدام واجبی از واجبای نماز ترک شده باشد یا تاخیر شده باشد از محل خود سجده سهو لازم میشود و بهتر است که انسان در هیچ و به هیچ نوعی سبب ازیتی یک برادر مسلمان خود قرار, قرار نگیرد سبب این نشود که برادر مسلمانش از دست و زبان او در امن نباشد اذیت شود بهتر است که همشو برادرایی کوشش کنند آرامتر بخونن که اینقدر بالن که سببی همان تشویش و وسوسه و یا همون خطری نمازگذاری کناریو بشه که او گناهکار میشه و او برادرم همچنان حتما طبیعت از او خراب میشه یا زبان خو او دو میده یا قلبا به و به سری بر می بعد از سبب غیبت میشه و او هم گناهکار میشه این انسانم پس بهتر است که انسان همین قسم برخورد و همین قسم قرائتی داشته باشد که سبب آزار ازیتی یک برادر مسلمان خود قرار نگیرد جناب سا شنونده از طریق پیام سوال کردن گفتن که شوهر من مطاد مر چند وقت پیش طلاق داده بود به دارالفتا مراجع کردیم گفته بود که طلاق باین شده و شما میتونیم بعد از عده که سپریشه دوباره نکاه کنیم حال سه از معده می شده سه تیر شده ما شوهر من نمی رفت که مطاد بود نمی رفت به دارالفتا مراجع کنه که دوباره نکاه کنیم ما روزی کردو بچه ها خو گرفتیم دوباره نکاح کردیم آیا نکاح مصیح شده یا نه خب این شنو عزیز ما توضیح ندادن که چی قسم طلاق داده حالا ما طلاق سری داریم کنایه داریم مغلظه‌ای داریم رجی داریم باینی با داریم که چی قسم طلاق بوده یعنی چی قسم کلیماتیر استعمال کرده و همان شوهر تلفظ کرده یک موضوع موضوع دیگر که کدام داره بوده یعنی دارالافتاها مدارس و خصوصی بوده یا اینکه به محکمه رفتن اگر در صورتی که تلاقی طلاق مغلظه باشه که اصلا بدون حلاله نیکا درست درستنی و سینیه اگر در صورتی که تلاقی باین با باشه طلاق با باین شده باشد و طلاق با باین کرده باشد بلی به با همون تجدید نیکا البته در داخل عده در داخل عده با وقت که تجدید نیکا میشه و نیکا دوباره بسته میشه سین شو مشکلی نداره تشکر شما جناب اساس جناب الساز سوال کردن گفتن که اگر ما بدون اجازه خانم خوب برم به جماعت و تبلیغ در حالی که خانم مرزینی میگه به خانه کسنیه و تو بعد به خانه بشی و او اگر به خانه پدر روان کنم و برم آیا مشکل داره یا نه ببینیم حالا ما که الحمدلله در همه ابعادی و گوشه های زندگی ما پیامبر صلی الله علیه و سلام و اسلام راهنمایی داره راه های را انجام دادن و کردن از, ترا... از طرفی اسلام بری ما راهنمایی شده کاملا گوشه های زندگی ما بری ما نشان داده شده حالا بعضی از اموری که فرض بعضی از اموری که انجام داده نوزینا واجبه و بعضی هم سنت و مستحبه و بعضی هم مخروعه و بعضی کارهایی که حرام است حالا در هر سفری از دیدگاه فقها در هر سفری بدونی اجازه همسر چار برد بیشتر جواز نداره که انسان سفر بکنه وقتی که او هم به اجازه همسر اگر اجازه همسر نباشد در سفرهای ضروری حالا ما باید هم متوجه باشیم که نفقه زن و فرزن برای ما لازمه کس بی حلال فریزه بعد از فریزه پیانبر صلی الله علیه وسلم سلم فرماین که همو و گویا کارو و کسب حلال او فریزه که بعد از روزه و نماز. اگر ما کاملا پشتی کار و بار روان میشیم. به پشتی کدم کاری که شعن مانی وجود نداره. ما درآمد از راه قانونی و شرعی به دست میآوریم و غذای حلالی را به دست میآوریم برای خانواده خود تهیه میکنیم و آماده میکنیم کنیمیم یک فرض است. خصوصا در وقت تو، حالا در شرائطی که من و شما زندگی میکنیم خیلی از انسانهایی که یکی انسان های لاعبولیه انسانهای جاهلیه که آنها فرق در بین حلال و حرام نمیکنند خدا نخواسته چشم به, به گناه دوختن به فکری خیانت در مال یک انسان هستند، به فکری خیانت در خانواده یک انسان هستند، پس در همچه شرایطی، اموری که به سر ما فرض نیه اموری که فرض است که فرض است از طرف الله و تعالی, و تعالی. کارهایی که برای ما فرض نیه بهتر است که ما از آلم های ربانی راهنمایی بگیریم و پرسان کنیم همو ضروریاتی دین خوده یاد بگیریم و هم اموری که برای ما فرزواجب به همان ها را انجام بدهیم و باقی اگر میدانیم که چند فیصد خطر داره برای خانواده ما خطر است برای جان ما خطر است و به گردنم هم, هم فرضم نیست در هم صورت چو... های اگر انسان در پشتی سر خانواده و اطفال و همسر و زندگی خود همراه خانواده بکند که کدم خدا نخواسته کدم کاری خلاف شرعی خودش و خانوادهش مرتکب نشود همین بزرگترین جهات و بهترین حالت است که انسان سپری میکند. تشکر از شما جناب اساس شنونده از خط سلام علیکم. شما خدمت, خدمت کار تکنیک و تمام شما هم بخیر خواهر بفرمی تشکر من سوال برنامه سوال کنی. بخش تکنیک متوجه باشند انشاءالله بعد از برنامه سوال هفتر پخش کنیم شنانده بعدی سلام علیکم بفرمین علیکم السلام سلام بفرمین برای شنوستا سوال بیشتون سوال اول اینه که مردی که دو فساد فصاب اخلقی بره زنی و خدیو و دعوا کنه دینجار کنه که نرو او بره آیا گناه میشه به زیزن یا سوال دیوم اینه که او مرد میگه هر مالی که ما بگم خدا رو به خدا هم نیرخشد تو با کار با کار ندیشته باش خدا خودی همه کار همه می همه به تو کمروشی نیه سوال جواب دهیم خدا شما ما خدای خیل زنده باشیم تشکر شنونده باشیم جناب استاد پاسخ باسخ بدن. شما های تماس برنامه 0792-792-792-0786-792-2369 بعدی سلام و علیکم سلام و و رحمت الله علیکم و و رحمت الله بفرمین سوالی از جناب مولای سفر بشتوم همی همسای مثل گل برو ساگی داره یا آدم از دست نودون بازا یا دست از دست مستراب بازا کنار خانی آدمه یا مثل به چه های شخیه داره اوی اگر مثال دیتو ستو همسو یا پنج تور چور تور جمع میکنی میبری بعضی میگم که از ما دیکھ میشه اوی او یک کلیمیک گفت بیتاره یا هزار لکات نماز نب. انا میرزی مرسی خیلی برای خیلی بینیم تشک بود سوال نه خیلی بینیم زنده باشیم تشکر بود بعدي بعدی سلام علیکم سلام دادا سلام زنده باشین خواهر بفرمایید. شما به خاطر یوه سکیمه دی. اولاد نه. شما خاطر که او بعد از عمل خو باز بگرده جلو گیری میکنیم بله بله دیگه سوال. سوال دیگه سوال خیلی داخل لازم می‌کنه میکنه اون اجازه نمی‌کنه. دقیقاً دیگه سوال. دکر تشکر شنونده باشیم جناب ساز پاسخ میدن جناب ساز سوال کردن گفتن که اگر دختر بچه رو حرم پدر و حاضر پدر پسر و پدر دختر حاضرن این دختر پسر به هم میدن بعد از او که بچه به خارج مثلا به ایران میایه حالا میتونه به مو نکایی که پدر مادر قیافتا بسته کردن اینو پیش هم کنن یا نه بله، اگر در صورتی که وکیل کرده باشه همان برادر خود همان پدر خوده بخی یک انسان اجنبیره که کاملا بیگانه هسته اگر از طرف خود وکیل کرده باشه که تو وکیل عقدی نگاهی من هستی برو دختر فلانی را برای من خواست. خاستگاری کن و بعد نیکا را تا جای ما وکیل هستی قبول کن همون وکالتش در هم موردی صحیح می شود و نیکایی که در بین دو عقد نکاح شده درست و صحیح و هیچ مشکلی نیست جناب سوال کردن درباره اتکاف گفتن شما یک توضیحی درباره اتکاف غیر رمضان بدیم آیا بدون روزم میشه آیا کمتر از ده روز میشه سه روز و چه روز بله اتکاف حالت در لغت فقط حتی یک ساعت هم همچنان شامل می شود. اگر انسان داخلی مسجد می شود به قصد اعتکاف یک لحظه و چند دقیقه هم حتی شامل می شود وقتی قصد اعتکاف داخل می شود همان ثواب را حاصل می کند. یک اموری مستحبه است یک کاری مستحب است یک کاری به خاطر اصلاح یا به خاطر سلاح بزرگان اولیاء الله اشخاص صالح، همچون گویا دواها را تجویز کردن برای صلاح و وجود و قلب و, روح و روحی روانی یک انسان بدون روزه امر مستحب است بدون روزه, روزه همچنین صحیح است همراه روزه بهتر است که سواب روزه سواب جداغانه است و سواب این که خود از اجتماع گویا به دور نگاه میداره او هم بخاطر اصلاح نفس خود بخاطر اصلاح اصلاحی رفتاری خود به خاطر صلاح کردار خود به خاطر صلاح روح و همو تازگی روح و روان خود اگر همچو وسائلی را اینا وسیله و ابزار است به کار می‌ندازد جواز داره و مشکلی نداره و همچنان دارای ثواب زیادی هم هست و حدیث هم می که پیامبر صلی الله علیه و سلام می‌فرمان اگر چل روز کسی به خاطر خدا کار را انجام بدهد خداوند جل جلاله او چشمه های حکمت را از قلب او بلسانی او جوری میگرداند یعنی دارای فضائل زیادی است اما چون که یک امری نافله کار نافله پس پس بنان روزه اگر بگیرد هم خوب است اگر روزه نگیرد هم خوب است چله لازم نیست در حکمت های تش... در چله هست بزرگان حکمت های زیادی را بیان کردن ولی لازم نیست که حتما بعد انسان بشن... کمتر باشد بیشتر باشد هیچ فرقی نمی کند، فقط با, با عنوان یک وسیله به خاطر صلاحی قلب یک وسیله هست که به کار مندازد هیچ اشکالی ندارد و همچنین به همراه روز و بدون روزه سهی میشه چون یک نفل است تشکر جناب استاد شنونده سوال کردن گفتن آیا شخص گناهکار که گناه کرده در قبرم عذاب میشه یا نه بله اگر در صورتی که تا وقت مردن خو الله تبارک و تعالی گناهان اون رو مغفرت نکرده باشه و توبه نکرده باشه انسان گناهکار در داخل قبر گرچه عذاب قبر عمومی است یک فشار و یک دلتنگی و یک خستگی در قبر رخ میداد حتی به سر حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یک زخته یک فشاری آمده و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند ولی عذابی خاصی که برای گناهکارها و برای فساق و فجار بله در داخل قبر همچنان همو عذاب را حس می‌کند جناب و شنونده سوال کردن گفتن اگر شوهر آدم یا مرد خانه آدم فساد اخلاقی داشته باشه و زن بارها بزو بگه که تو نباید به رد گناه بری و کارهای گناه رو بکنی او توجه نمیکنه و خود زن سر صدا میکنه آیا زن به گفتن ها خوک گناکار میشه نهخیر نه, نه که گناهکار نیست او یک دعوتگر است واقعا او سواب یک دعوتگر را حاصل میکند که در هر قسم که می شود باید همراه شوهر صحبت کند و آن را تا حد توان از فساد اخلاقی او شوهر را منع کند بله شنونده گفتن که او میگه که تو به من چیکار کار داری؟ هر کار بکنون خدا مر می بخشه تو به گناه و کار به کار داری؟ آیا با... این سخن کاملا اشتباه هست ای اشتواه هست یک فریب شیطان است رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند الکیس مندانه نفسه و عمل لیما بعد الموت و جزء دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و وسلم میفرمایند هوشیار زیرک کسی است که نفس خود میدانه و بری بعد از موت آمادگی میگیره عملی رو کاری رو انجام میده به خاطر بعد از موت ولی سفی و نادان کسی است که هر قسم افعال و کرداری که از دستش بیایه انجام میده بعد ویتمن علی الله او که مقال نبی صلی الله علیه و سلام آرزو میکنه هر قسم کاری اشتباه و خطایی را انجام میده بعد آرزو میکنه که الله تبارک و تعالی من را میبخشه بله بی خداوند غفار است خداوند غفور است وقتی انسان توجهی بکند ور بگردد قول خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را مد نظر داشته باشد به خاطر خداوند جل جلاله خود را از گناه کنترل بکند یک موضوع و دیگر موضوع دیگر این که بعضی از گناه ها بزرگان می نویسند که خصوصیت گناه همی است که گنا قوه جاذبه داره. البته سواب و تاعت همچنان است هردوی اینها قوه جاذبه دارد انسان وقتی کوچک گناایی را انجام میداد آن را میکشاند به گناهایی به گناه بالاتر از بالاتر و, بالاتر و بالاتر و همچنین رسول الله می که یک نقطه ای در قلب انسان میفته وقتی که گناه را انجام میده. اگر باری دوم گناه میده نقطه دیگر را خالی دیگر را رفته رفته رفته رفته خدا ناخه قلبش سیاه میشه. و همچنان گناه، سبب میشه خدا نخواسته در بعضی موارد گناه سبب میشه که همون سلبی توفیق میشه انسان خداون توفیقی ورگشت را از اون انسان میگیره اون را توفیق نمیده که بار دوم به طرف الله و تعالی و تعالی ورگرده که خدا نخواسته اگه به سببی انجام دادن و دوام دادن گناه سبب شد که انسان توفیق از اون گرفته شد خسرت دنیا و آخرت میشه به نعوذ الله الله و تعالی و تعالی تمام من و شما را حفظ و اولاد و جامعه ایما را از همچه خواب و خیال هایی که در پشت گناه روان باشه و بعد تمنای خوشگی بر الله تبرک به تعالی بکنه همه من شما را حفظ کند جناب استاد ساز شنونده سوال کردن گفتن بعضی از امسایی هستند که ما از ما ادست سگنا یا از بچه اینا یا دست یک مشکل و آزار و اذیت از به ما میرسانند می که ما ادست اینا به عذابیم بعضی از مردم جمع میکنیم به خاطر که او اسلاشه و میریم داخل خانه یا, یا جلوی در میگیم بعضی ها میگم نباید کار بکنیم که او ناراحت میشه نه خیره کار... باید هم انسان همچه کاری را بکنه چون هم محیط زیست هم حق همسایه خانواده هم جوار اینها هر کدام حقی دارد باید هم حق هر کدام از همسایه باید مراد بشه خودی ما انسان باید متوجه بشه که سبب آزار و یک مسلمان قرار نگیره چیزی که همسایه رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرمایند مؤمن نیست یعنی مؤمن کامل نیست کسی که همسایه او از شر او در امان نباشه یعنی او سببی آزار و ازیتی همسایه قرار بگیره سبب خستگی همسایه قرار بگیره نیازه بعضی از انسان ها دور شنوندهای عزیزی ما که انسان که متوجه همچه اموری را نمی شود کارهایی را توجه نمی کند که این سبب داخلی کوچه می روه آب حمام یا آب فضلات دشوی یا مثلا آه آه آه کار دیگر را برنامه دیگر را اطفالی به سبب آزار ازیت همسایه ها قرار میگیره. ضرور، نیازه که باید هم اما ضرور نیست که باید فوری خودیزو جنگ شوه جنجال بر برافتکه داخلی کچه و منطقه بسیار به شکل و طریق پسندیده و به خوب و عنوانی دلسوزی و عنوان یک برادر مسلمان که بارش گناهکار نشیتو ما از اذیت ازیادیم باید هم هر قسمی میشود ای آزار ازیاد خود از ما دور کنی به هر قسمی میشود اگر سگ است اگر فرزند است او را کنترل کنی اگر به سبب دیگه آبهای فضلا اه اه سبب آزار آزار هم همسایه قرار میگیرد باید هم بریش بسیار به وش و طریق ملایمت و نرمی گفته شود که او هم شامل گناه نشود و این دیگر همچنان آزار ازیتی بیشتری متحمل نشود چون هرچی که آزار ازیتی آن همسایه دوام پیدا کند سبب میشه همسای بهغل دستی و از آن غیبت کنه به هر جا بدو آن گپای زیوتی هم بگه تهمتی بزنه این هم گناه کار میشه او هم گنا کار میشه خیلی خوب است که یک دو انسانی موسیفید و خیرخوا در حضوری آن برادر رفته و از او درخواست کنند که همین کارت فلان فلان فلان, فلان کارتوسبب آزار و ازیتی. همسایه ها قرار گرفته بهتر ایست که از همچه عمر خود را و فرزند خود کنترل کنید تشکر از شما جناب ساز به دقایق پایانی برنامه رسیدیم اگر چه چند سوال دیگر باقی مونده شنوند ماذرت پذیرا باشند و تشکر از اینکه به برنامه تشریف آورده. تشکر تشکر از شما و از های عزیز و از برادری که در تکنیک مصروف هستند الله تبارک و تعالی در عمر و کار شما برکت و دهد و توفیق مزید را شاملی حال شما بگرداند. تشکر شما. شنوانده های خوب رادیو قذلی ندای امت ای بود برنامه اشنوی با حقایق امروز که تقدیم شما شد. برنامه های دیگر رادیو قزلی را از یاد نبرین. خداوند حافظ و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.